فصله 23. گرچه پدرم در آن زمان حدسش رو هم نمیزد اما کم کم در تابستان و پاییز سال 1937 بر اثر این اشکال که سناریوی مناسبی برای پولت پیدا نمیکرد آشفته خاطر شد من سیدنی بدون آنکه پدرم متوجه شود به قله پدران و مادران به آن سن رسیده بودیم یعنی ما به ترتیب دوازده ساله و یازده ساله بودیم و میخواستیم کارهای شجاعانه بکنیم و آمادگی داشتیم با وجود اندرسهای محتاطانه پدرم به هر چیز و هر کار دست بزنیم. چهارم جویه آن سال حتی توانستیم قدغن او را در باره تر کردن بشکنیم. پدرم هیچ وقت خودش چهارم ژوئیه را جشن نمیگرفت. علاوه بر این جشنهای میهنی انگلیسی را هم برگزار نمیکرد او برای هیچ کشوری شمشیر نمیکشید و سینه سپر نمیکرد و عدم توجه او به تنظیم سیاست شخصی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم برایش مشکلاتی ببار آورد اما تماشای آتشبازی را دوست داشت حتی یک سال با تحمل فشار جمعیت ما را برای تماشای آتشبازی به آنجلس برد اما ترقه در کردن را دوست نداشت، از این کار نفرت داشت، زیرا صدای ترقه اعصاب او را آزار می داد. اما این ناراحتی خود را به رو نمی آورد و به عنوان اینکه که ترقه در کردن برای ما خطر دارد، ابراز نفرت از آن می کرد. با لحن جدی به ما گفت، ترقه در نکنید، مگر نمی توانید بدون اینکه دستتان قدر شود زندگی کنید. ممکن است برای سراسر امکور شوید. باز هم از آن اقراقهای خالص چاپلین. اما من و سیدنی دیگر تحت تأثیر حرف‌های او قرار نمی گرفتیم. فقط به این توجه داشتیم که موقع در کردن پدر در آن دورو بر نباشد. به طور کلی ما بی او را نسبت به اعمال خشن دیگر در نظر نمی گرفتیم. به خانه می آمدیم و درباره دعواهایی که با بچه های دیگر کرده بودیم لاف می زدیم. یکی از تعطیلات آخر هفته را که به خانه آمدم و خبر دادم که با بابی کیتون پسر باستر کیتون دعوه کردم به یاد دارم. پدرم با نارضایتی گفت شما هیچ وقت نباید دعوا کنید. اما وقتی شروع به شرح دعوا کردم پدرم چنان مجذوب شد که انگار هرچه گفته بود فراموش کرده است. وقتی داستان دعوارا به پایان رساندن پدرم سری داد و گفت این از تونت های قدیمی خانواده چاپین است. می‌دانید که پدرتان هم یک وقتی دعوا می‌کرد و بعد به شرح جریان پرداخت. یک وقت در یکی از رستوران نیویورک با چند تن از دوستانش مردی جلوی او را گرفته بود. به گفته پدرم آن مرد دست کم 180 سانتیمتر قد داشت و هیکلش هم به همین تناسب بود او مست کرده بود با یک شراب مارتینی در دست جلوی پدرم آمده و گفته بود پدرم در اینجا تقلید آن مرد را در میآورد. شما چارلی چاپلین هستید؟ پدرم معدبانه جواب داده بود بله آن مرد با ستیز جویی گفته بود من از قیاف تو خوشم نمیآید. پدرم جواب داده بود. پس چرا نمیروی سر میزد بنشنی؟ آن مرد نهره کشیده بود که من باید دندانت را خرد کنم. و با این حرف شراب مارتینی را به صورت پدرم پاشیده بود. پدرم آتشی شده و بدون اینکه فکر کند از جا پریده بود و با کله زیر چانه آن مرد زده بود. پدرم می گفت. البته این کار خوبی نبود و بعد هم کراوات مردک را گرفت و سرش را پایین کشیده و با کله توی صورتش زده بود پدرم در حالی که از جا پریده بود به من نشان میداد که چطوری کله زده است پدرم مثل برق می‌جنبید و در جنبش او میز نیرویی نافته است بینی او را شکسته دوتا تا دندان جلوش را خرد کرده و او را به زمین انداخته بود بعد پدرم بیده بود که دوستان آن مرد که همه گنده بودند دارند به طرف او میآیند. خوشبختانه پیش از آنکه پدرم دوباره کله بزند پلیس مداخله کرده بود. پدرم بعد دستش را که حتی به کار هم نیامده بود پاک کرده سر میز شامش برگشته بود. پدرم در موقع نقل داستان از خود بی خود شده بود. اما بعد به خود آمد و نتیجه گرفت. میدانی پدرت می که چون این وقایی رخ می دهد. و این هم که تو پیش‌بردهی خوب است ولی یادت باشد دیگر دعوا نکنی. دعوا کار احمقانه است. برای چه میخوای خودت را ناقص کنی؟ ولی دعوای ما به علت استیزی جویی و دعوی بودن نبود. وقایع عجیب و غریبی برای ما به خصوص برای سیدنی پیش میامد. یک روز روی کشتی در وسط کانال کاتالینا همه خیال کردند او از بین رفته است. یک روز طوفانی بود. سیدنی با خیال راحت میان دوتا تا قایق نجات قرار گرفته بود حال آنکه همه از ترس آنکه مبادا روی عرشه رفته باشد تمام کشتی را به دنبال او گشتند. پدرم به کلی گیج شده بود. حتی کشوها را بیرون میکشید که ببیند توی کشو چیست. اما نباید تصور کرد که سیدنی همیشه قربانی آاع احوال میشد. خود او هم در کله هر چیزهایی داشت. بیشتر افکارش متوجه آن بود که پول تو جیبی ما هفته پنجاه سنت که مادرم و نانا به ما میدادند زیادتر شود. گاهی پدرم به داد ما میرسید. در روزهای تولد همیشه میشد روی او حساب کرد که هدیه نقدی از پنجاه 50 تا 500 دلار به ما خواهد داد. گاه گاهی که سر حال بود دست توی کیفش میکرد و یک اسکناس پنج یا ده دلاری به ما میداد و سفارش میکرد آن را خرج خرچ کنیم. اما ما نمیتوانستیم روی این سخاوت های غیر قابل پیشبینی حساب کنیم. گاهی برای پول درآوردن زمین و خانه خود را به جهانگردان نشان میدادیم و برای هر نفر 25 و پنج سنت میگرفتیم. اما جهانگردان در جاده نزدیک خانه ما کم پیداشان میشد. بعد یک روز فکر بهتری به کلی سید رسید روز جمعه که به خانه آمدیم گفت بیا ما هم مثل بچه های دیگر جایی درست کنیم و لیمونات بفروشیم. من پرسیدم آخر در اینجا کی از ما لیمونات می خرد؟ سیدنی گفت لیمونات که نه مشروب الکلی. بیا تا من نشانت بدهم. و مرا با خود به آشباز برد. به نظرم آن روز روز تعطیل مستخدمین بود چون هیچ کدام از آنها نبودند من و سیدنی کلید گنجی که مشروب پدرم را پیدا کردیم و آن را ردیف بطری مشروباتی که پدرم سالها جمع کرده بود جلوی چشم ما ظاهر شد. سیدنی گفت: « همه بزرگها از اینها میخورند. میتوانیم سر جاده می زیلم کنیم و اینها را رویش بگذاریم و بعد به رهگذرها بفروشیم. هر بطری، پنجاه سنت پولدار شدیم فکر پول دار شدن به نظرم پسندیده آمد ولی گفتم: اما سیدنی باباچی سیدنی دستش را تکان داد و گفت: « آنقدر دارد که شاید اصلا متوجه هم نشود بیا او خیلی پول است استدلال سیدنی مرا خام کرد در بردن باتری به او کمک کردم. در حدود چهل تا بطری بردیم و روی چهار پایه هایی سر جاده گذاشتیم و به انتظار اولین مشتری ایستادیم. مشتری خیلی دیر نکرد. چه کسی غیر از آقای سلزنی که ما اغلب خواب صبحش را با سرسره بازی خود به هم زده بودیم میتوانست مشتری ما باشد. او از جاده جلوی خانی خودشان به خیابان آمد و دستگاه مشروب فروشی ما را دید. اتومبیلش را جلوی ما پارک کرد پیاده شد و بازری را وارسی کرد. چشمانش می درخشید. او پرسید: «خب اینها را یکی چند می فروشید. من و سیدنی با هم جواب دادیم یکی پنجاه سنت. آقای سلزنی گفت: «من اش را میخرم و خرید. در حدود 20 دلار از این معامله درآوردیم. به آقای سلزنی کمک کردیم که جنس خریداری شدهش را که مشروبات گرانبها مثل ویسکی اسکاچ و بوربون و دیور کمیاب بود و بیش از دویست دلار میارزید توی اتومبیلش بگذارد. او راه افتاد و از خیابان به جادهی خانه خودشان پیچید و همه مشروبات را با عجله به خانه برد. کمی بعد پدرم به خانه آمد. هنوز بیرون نیامده بود که من و سیدنی را خواست. ما به داخل خانه رفتیم. چشم سرد و آبی او به ما دوخته شد. از ما پرسید. بچه ها شما مشروب می بیایید ببینم. بگذار دهانتان رو بو کنم. یک دقیقه فکر کرد و فهمید که سوالش مضحک بوده است. فوری به این ترتیب اصلاح کرد. نه مقصودم این نبود. اما شما چه به سر مشروب هایی که توی گنجه بود آورده اگر قبلا فکر میکردم که میشود چیزی را از پدرم پنهان کرد، حالا میفهمیدم این کار غیر ممکن است. ممکن نبود چیزی در خانه اتفاق بیافتد و او نفهمد. او تقریبا فوری کشف کرده بود که مشروب سر جایشان نیستند. ما منمن کنان گفتیم، مشروب را فروختیم که پول در بیا بریم. پدرم از جا در رفت. آتشی شده بود. چی؟ مرد شورتان ببرد، فقط همین کارتان مانده بود که اشیای پدرتان را ببرید و بفروشید. او از گستاخی ما در برابر پدری که هرگز در چیزهای متعلق به ما مداخله نمی کرد، عصبانی شده بود. وقتی حالش را آمد و صدایش عادی شد گفت، میدانید کی که مشروبها را از شما خرید؟ ما لرزان به او گفتیم، فقط یک نفر، آقای سرزنی که از خیابان می گذشت. همه آنها را خرید؟ بله همه آنها را. پدرم با وجود نفرتی که از تلفن دارد، گوشی را پرداشت و به آقای سزنیک تلفن زد و به او گفت که ما بدون اجازه بطری های مشروب را از خانه بیرون برده ایم و از او تقاضا کرد ممکن است آنها را برگردانید؟ مشروبات کمیابی است. مقداری از آنها خارجی است و من به زحمت آنها را تهیه کردم. اما آقای سلزنیک چنان از این شوخی خوشش آمده بود که حاضر نبود به آسانی آنها را از دست بدهد نمیدانم بالاخره چطوری قضیه را بین خودشان حل کردند یا آنکه اصلا قضیه حل شد یا نشد اما این را میدانم که من و سیدنی جریمه این طرح زود ثروتمند شدن را ناچار بودیم بدهیم پدرم به طرف ما برگشت و مانند دادستان دادگاه نطخ درازی را شروع کرد. هرچه او بیشتر حرف میزد ما بیشتر خودمان را جمع و جور می کردیم و بعد موقعی که از مجازاتهای شایسته ما اسپورد خود را درست مارنده جنایتکاران احساس کردیم ادامه داد می توانم شما را در تمام تعطیلات این هفته در اتاقتان حفظ کنم همین کار را خواهم کرد در را به رویتان می بندم بله دوز را به زندان می اندازند من برایتان در همین خانه زندانی درست کردم برای اینکه این, این کار شما دزدی بوده است. البته او خیلی عصبانی بود و ما خیلی مرعوب بودیم. اما قضیه مهمتر از این بود. ما به طور مبهم احساس میکردیم که او واقعا آزرده خاطر شده است و ما به او خیانت کردیم از این جهت بود که قضايا به نظر ما چنین وحشتناک میآمد. بالاخره همانطور که حرف میزد بیرون رفت و برگشت که مجازات ما را اجرا کند. این مجازات همانطور که این بار من و سیدنی انتظارش را داشتیم مجازات سختی بود. دستور داد از همان روز بعد از ظهر به رخت خواب برویم. شنبه و یکشنبه را تا ساعت شش بعد از ظهر در آنجا بمانیم. در تمام این شبها شام به ما ندهند. فیلم تماشا نکنیم و حق نداشته باشیم با دوستانمان بازی کنیم. عجب تحتیل آخر رفته. من و سیدنی ساکت و آرام از فله ها بالا رفتیم. پیژاما پوشیدیم و به بستر رفتیم. یادم نیست شاید کمی هم گریه کردیم. ما تسلیم این مجازات شده بودیم و همانطور دراز کشیده در بستر میاندیشیدیم. اندیشیدیم که جرم ما این بار خیلی سخت بوده است که حتی پولت که در خانه بود کاری برای دفاع از ما انجام نداده و کلمی از جانب ما نگفته است. روز طولانی بود. بالاخره شام شد. شب فرا رسید و همراه آن گرسنگی به سراغمان آمد. ما که می‌دانستیم الان دارن در طبقه پایین شام میخورند خیلی گرسنه مان شده بود. دور بودن از افراد خانه و در تاریکی ماندن احساس افسردگی و انزوای عجیبی در ما ایجاد کرده بود. بعد ناگهان در باز شد. یک کسی، کورمار کورمال دنبال کلید ورخ می گشت و بالاخره چراغ را روشن کرد. پولت بود. در دست او یک سینی بود که در آن غذاهای دست پخت جورج را چیده بودند. هنوز از روی غذاها بخار بلند می و اتاق را با بوی مطبوع پر می کرد. پولت آرام در را بست و گفت پدرتان این را نمی داند. من دلم به حال شما سوخت. او سینی را آورد و روی میز کنار تخت خواب گذاشت و اضافه کرد. اما البته این کار غلطی بود که شما مشروبات پدرتان را آنتاری بفروشید. پدرتان خیلی از جا در رفته است. ما چه میتوانستیم بگوییم و بکنیم تا پولت برق حق شناسی را در چشم ما ببیند. جز آنکه به غذاها حمله شویم هر سه شب پولت و سینی غذا یواشکی واشکی سراغ ما آمد. هر شب یه واشکی می گفت سس... پدرتان این را اما من فکر کردم که بالاخره شما باید چیزی بخورید پلت خوشقلب جروی چشم پدرم می استاد متحد وفادار و دوست سمیمی ما بود بعدها وقتی بزرگ شدیم حقیقت قضیه را فهمیدیم پدرم که هیچ چیز از چشم تیزبین اوپنهان نمی ماند باید به کار هر شبه پالت پی برده باشد اما او به فکر افتاده بود که این مجازات برای ما خیلی سخت است کار پالت را می دانست ولی جلوی آن را نمی گرفت